سلام به پیار پادکست خوش اومدین. در هر قسمت از این پادکست من آرش و همراه دوستم مهدی با یکی از توسعه دهندگان برمای متن باز هم صحبت می‌شیم تا از چالش‌هایی که داشتن حرف بزنیم و از مسیری که طی کردن بشنویم. شما در حال شنیدن قسمت هفتم از این پادکست هستین که در اردیبهشت ماه سال 1401 منتشر شده. مهمان این قسمت آریا مینایی است، سازنده لایبرری سیتر JS. اس. JS از انیمیشن لایبرری فور های فیدلیتی گرافیکس. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایت ما با آدرس پیار پادکست نت سر بزنید. همچین در صورتی که علاقه هستید از اخبار پادکست مطلع باشید میتونید ما را در تلگرام و توییتر دنبال کنید. آره جان یک کمی معرفی میکنید با اون آریام آریا مینایی برنامه نویسم و یه چند ساله که دارم رو این پروژه کار میکنم الان تو برلینم قبلا هلسینکی بودم قبلشم که تو ایران داشتم روش کار میکردم پروژه از کجا گرفت؟ ایده چجوری اومد تو ذهنت و چیز شد که اصلا رفتی به سمت دنیای اوپن سورس اصلا از اول تو ذهنت بود که واقعا پروژه اوپن سورس بکنی یا نه باشه الان ببین چیزی که الان تو روی یه ریپازیتوری میبینی یه, یه لایبرری جاویسکریپت برای ساختن انترکشن دیزاین و انیمیشن و چیز خواهد چیزهای خاصی که داره شاید اصلی اینه که تو هم میتونی با کود انیمیشن درست بکنی همین که ابزارهای ویژوال داری یعنی مثلا یه چیز شبیه تالا بلندر افتر یا هر ابزار ویژوال دیگه که به ذهنت میاد این توی مرورگر هست با لایبرری اینترفیسش میاد بالا و تو هم میتونی خواست مثلا کی فریماتو بشینی و یه مثلا یه انیمیشن قشنگ اونجوری درست بکنی ولی فقط محدود به ویژوال و اینا نیستی یعنی تو میتونی بری تو کد میتونی همه چی اونجا بکنی و خلاصه از هر چی از هر دو طرف ذهنت اگه حالا قبول می‌کنی عبارت تو از هر دو دو سمت ذهنت استفاده بکنی یا اینکه مثلا یه دیولپر باشه و یه دیزاینر باشه با هم دیگه خیلی نزدیک به هم کار بکنن بدون که هانداف بخون داشته باشن و تبدیل بخون بکنن سایت مثل اپل رو که میری محصول هر محصول جدیدی که میذاره تو برای اون محصول یه, یه ویب پیجی میبینی که تو اون وب پیج وقتی اسکرول میکنی یه فیلم سینمایی میبینی تقریبا آره عملا آره و مثلا کلی قشنگ چیز شده به قول معروف آرت دایرکشن داره خب این کارگردان داره واقعا بعد لحظه به لحظه انیمیشن خیلی دقیق روش کار شده مثلا اگه یه مثلا اگه رو داره نشون میده یه لحظه هست که ایرپاد باز میشه برات مثلا باز میکنه ایرپاد تو اون لحظه میبینی که چه اجزایی داره و مثلا اون لحظه باز شدنه مثلا سی میلی ثانیه تون تر باشه تو یه حسی داری سی میلی ثانیه کنتر باشه یه حس دیگه ای داری خب این چیزی که مثلا که اصل کارشونه این از همون اول تایمینگ و سرعت و اینجور جور چیزا رو یاد میگیرن بعد این خلاصه توی این ویب سایت ها هم هست حالا یه مثالش اپل بود به مثلا حالا میتونه رابط مارکتینگ هم نداشته باشه انیمیشن تو مثلا کلی انیمیشن داره برای آموزش برای بازی برای خیلی چیزا خیلی کاربرد داره انیمیشن اینتراکتیو دیگه و تو خیلی از ویب پیج ها هست حالا یه موقعی ب به بچشش میاد یه موقعی بچشش نمیاد تو اپ ها هم هستی که مثلا تو اینتراکشن می کنی با یه اپی مثلا جمعان هم داری غذا انتخاب میکنی. کنی بعد مثلا روی یه پیزا کلیک می کنی بعد مثلا می پره میاد وسط صفحه خب اینو پرشش چیزیه که حالا یه جوری در حالت ایدال یه جوری طراحی میشه که یه جوری قشنگ بیاد وسط صفحه که تو وقتی اینو می بینید دلت بخواد مثلا اینو سفارشش بدی خب اولین چیزی که ما باش ساختیم یه توتوریال تصویری بود چندین سال پیش که آره و مثلا اون توتوریال تصویری بود که خیلی هم سرصدا کرد و مثلاً باعث شد که مثلاً ما بخوایم روی ستارتاپش بکنیم خب الان با این توضیحاتی که دادی به نظرم فرصت خوبه که برگردیم به همون سوال مهدی و بگی راجبه این که اصلا چی شدیم پروژه شکل گرفت از کجا شروع شد یه کدش که تقریبا سال چند بگم براتون سال فکر کنم 92 اینجوری بود از اون کدی شروع شد ولی قبلش بازم من چندین سال بود که روی اینجور چیزا کار می‌کردم یا بهش فکر می‌کردم یکی از حالا شبه بگم مثلا خیلی بخوام بریم عقب اینجوری بود که من موقعی که کامپیوتر خریدم این می‌خواستم کامپیوتر بخرم وقتی بچه بودم یه دو سال بود چه منتظر بودیم این کامپیوتر بالاخره خریده بشه و بیاد من تو این دو سال تصور میکردم چه جوری از کامپیوتر قرار استفاده بکنم و مثلا من خواست یه ربات بسازم داخل کامپیوتر بعد تو مثلا تو فکر خودم اینجوری بود که خب من مثلا اون یه نرم افزار رو بازش میکنم بعد ربات رو کشمش. بعد مثلا اونجایی که دست ربات می‌خواد بازو خب اونجا یه آرمیچر میذارم بعد مثلا خب مثلا سرعت باز و بسته شدن دستش اون کنترل میکنه دیگه بعد اون آرمیچره خب مثلا من تو دنیای واقعه با یه باتچی 1.5 ولتی میذارم مثلا اینقدر میچرخه دو تا باتچی میذارم سه بود بشه اینقدر میچرخه بعد مثلا تو زن خودم می‌گفتم خب پس این یه چیزی که یه عدد بعد بهش بدم بده خب بعد خلاصه تصور میکنم که خب یه من آرمیچر رو اونجا خلاص عدد بهش میدیم و اینا مثلا ربات حرکت می‌کنه بعد خب کامپیوترو خریدیم بعد روز بعدش من پینتو باز کردم بعد شروع کردم رباتر رو کشیدن بعد دیدم که آرمیچر نمیشه گذاشت اونجا بعد من مثلا گفتم که شاید نرم رو من ندارم بعد تو تلویزیون شبکه 5 مثلا یه بار یکی اشاره کرد گفتش که با, با, با فتوشاپ میشه چی ساخت میشه انیمیشن ساخت ما رفتیم فتوشاپو مثلا پیدا کردیم و اینا نصب کردیم فتوشاپ بعد دیدیم که خب نه توش برنامه نویسی نمیشه کرد و میتونی نقاشی بکنی خیلی هم باحاله، ولی برنامه نویسی نمیشه کرد بعد خب برنامه نویسی مثلا رفتم سراغش یه دوست بابام بود یه کتاب قطورت آموزش توربوسی بهم داد. بعد مثلا با این آره اصلا فکر بچه 10 ساله داره خواهد توربوسی یاد بگید کامپالرش هم نداره بعد مثلا با اون چیز می با اون برنامه نوشتم ولی با اون نقاشی که نمیشد کرد خب هم میتونست سی کد بنویسی بعد آاصلا یه مشکلی بود که اکثره بود یا تو میتونست طراحی بکنی کارای بثری انجام بدی یا میتونه سی کار کد و پروسیجرال انجام بدی خب هر دو رو با هم دیگه نمیتونست داشته باشید حتی ویژوال استودیو هم باز اینطوری بود ویژوال استودیو اسمش ویژواله ولی مثلا تو ویژوال استودیو قرار نیست تو بتونید نقاشی بکنی چیز سه‌بعدی بخوای مثلا هیچکد از این کار نمیتونه بکنی آخرش بعد بین کد و کار بسری باید یکی انتخاب بکنی و اگه میخوای هر دو رو با هم انجام بدید یه پروسه خیلی طولانی داره برای اینکه مثلا از این اپ یکی برنامه چمونم. این داستانی که طرف من یادم انداخت که یه زمانی احساس همین حرفایی که زدید دلیل محبوبیت خیلی زیاد فلش شد چون فلش دقیقا همین کار انجام میده که به تو اجازه میداد فضای بسری و کود رو آره، با هم آره، تلفیق کنی من حالا حتی سمت فلش هم رفتم و خیلی هم فلش رو دوست داشتم پس اکشن اسکریپتم کار کردی آره اکشن اسکریپت رو نم کار کردم منطقه از همون موقع من مثلا زبان برنامه فلش و اون محیط ویژوال فلاش خیلی از هم جدا بودن ببین اینتروکت که تو توی یه دونه ویندو توی پنجره میتونستی هم کد بزنی همون سمبل ها رو مثلا دستکاری بکنی اینا رو میشد انجام بدی ولی اینکه با کد یه سمبلی بسازی بعد ویژوال سمبل رو تغییر بدی بعد با کد اون چیزی که ویژوال تغییر دادی رو تغییر بدی نمیشد خب یه چیز بود یه چی میگم یک به یک بود یا اینکه مثلا الان توضیحش خیلی سخته اینا با هم کمپوز نمی شدن، یعنی ترکیب نمی شدن جالبه بعد این همه سال ما هنوز این مشکل بایندینگ رو داریم یعنی حالا که میبینید تو انگولار رو ریاکت ایک کاری که می‌کنی که ما چطوری این وریویل رو بایند مکنیم به این تکس باکس مثلا این یکی از ام... چی میگن چالش مش... های اصلی کامپیوتر ساینس یعنی چیزی که از اول بوده و هنوز حل نشده اینجوری نیستش که مثلا آقا فلان نرم اینو حلش کرده نه هیچ کس اینو حلش نکرده هر کس یه یه سوشن خیلی محدودی براش درست کرده برای یه دومین خاصی ولی به طور جنرال حل نشده و اصلا کل تز مثلا استارت من اینه که ما یه, یه ابزاری می‌سازیم که باش بشه کامپوز کرد کامپوز کن یعنی که تو دیگه بایندینگ لازم نداری همه چی با همدیگه میشه ترکیب بشه آره و حالا مثلا الان که یه چیزه انیمیشنه فقط چیزه فقط مثلا یه شروعش با انیمیشنه بعدن بقیه هیده های کامپیتر ساینس رو توش میذاری مشکل بایندینگ مشکل میوتبل استیته اینکه که تو چطوری یه استیت میوتبل داشته باشه که بعدن بتونی راجبش تحلیل بکنی که چه اتفاقی دقیقا داره میفته آره دقیقا, دقیقاً اصلا چیزه مثلا کامپوزیشن اگه کامپوزیشن می‌خوای داشته باشی حتما باید به یه نهوی بتونید اینکه ایمیوتبل استیت باید داشته باشی مثلا قبل من مثلا ایده این چیزو ابزارو از قبل از اینکه اسکیمو کلوزر و رو اینا رو یاد بگیرم ایدهشو داشتم منتهات نمی‌شد یعنی اجرا پذیر نبود یکی از اولین چیزهایی که باعث شد ام ام بفهمم چه جوری میشه اینو اجراش کرد همین یاد گرفتن کلوزر بود و ایمیوتبل استیت یعنی مثلا چقدر تو میتونی آره اینم بدونه این اصلا نمیشه چه جالب که دستمون یه جوره کانورژ کرد به یک به, به یک سمت سو به هر سمتی میروی در نهایت ایمیوتابیلیتی به اونجا میرسی برای دیزاین خوبیه می خوب که میخوای خب خب خیلی یعنی اصلا بدون آن نمیشه. حتی زبانی که الان استفاده میکنم TypeScript چی میگن Closure رو اینا از تو, تو، توی،, توی پروژه استفاده نمیکنم ولی um, immutable state قطع. یعنی کل state immutable فقط از یه اتم کل مثلا آن افزار فقط از یه اتم داره آپدیت میشه. بعد دیگه functional reactive پروگرامینگ داره یعنی مثلا ن state تو تو می‌یاب یا flat مپ می‌کنی یا reduce می‌کنی و اینا به استیتا به ولیهای دیگه به قول دریویشن داره مشتق داره توش و اینجور جور چیزا اینا همش اینا همه اینها از همون دنیای لیسپ و دیگه حالا اسکیمو و, و این چیزا خیلی یاد. جلو رفتیم به نظر بیا دو دوباره برگردیم به همون شروع کار که آقا خب تو شروع کرد برنامه‌نویسی رو کتاب تورگوسی دستت اومد هیچ وقت هیچ جایی من یه چیزی ندیدم یه محیط خلاقی ندیدم محیط منظور یه نرم افزار حالا بگیم که توش هم بتونی کار بسری یا صوتی انجام بدی هم برنامه نویسی کنی و اینها به هم دیگه بخورن خب این مثلا برنامه نویسیه در تضاد نباشه با اون کاره بسری حالا مثلا سالها بعدش دیدم که چرا یه محیطهای برنامه نویسی بوده که خیلی هم نیچ و خیلی چیزه. بس اسمال اسمال تاک اسمال تاک چیزی بود که اینا رو داشت یعنی تو هم میتونستی توش واقعا کار بسری انجام بدی هم برنامه‌نویسی انجام بدی و اینا خوب با هم دیگه مچ می‌شدن خاله من نمیدونستم الان افت اسمال تاک یادم چی افتادم این پترنم حالا هفتام رد شد الان این پترن ام وی سی هم دوباره از همونجا داره میاد آره آره اصلاً نصف یه چیزایی که ما انج... الان تو دنیا ما داریم از همون دنیا اسمالتاک یا لیسپه یا اسمالتاکه یا مثلا نهاتا ایمله فورتران هم باید به این مجموع اضافه کرد لا. آه به اوز میخوام راست میگه فورتران و فورتران و <تصفح> واقعا تو حوضه برنامه نویسی خیلی ما مد... مثلا اونطوری بگیم اینو آ... آرمسترانگ جو آرمسترانگ میگفتش که مثلا سال 1780 اه. خودش میگفت آخرین چیز شگفت انگیزی که من بود دیگه از اون زمان به این طرف مثلا اینکه بگی بگید واو اون چیز خیلی تحول امیقی و بزرگ بچه برد اون طوری نداشتیم واقعا تو حوزه زبانه برنامه نمیسیم ولی تو چه, جو... جو... چه سفر اودیسواری داشتی؟ خب <تصفح> <تصفح> <تصفح> <قول> آخه میدونی یه سالت هم فکرم 92 و... آره فکرم 92 بود من داشتم اول ویرژن اول سیتر جریسو برای خودم مینوشتم و اینجوری بود که تو توی مرورگر یعنی توی محیط جاوا اسکریپت کافی اسکریپت میتونستی تونستی بایندینگ درست بکنی بین یه تایملاین انیمیشن که حالا که انیمیشن کار کرده تایملاین رو دیده تو افتر فکس و اینا هست خلاص بین تایملاین و انیمیشن و یه سری متغیر آزاد بعد, بعد میتونی این متغیر آزاد رو مثلا وصلشون بکنی حالا به html یا وب یا هر چی بعد من اینو درست کردم برای خودم بعد تا یه دو ماه بعدش شاید یکی از این تاکهای برت ویکتور رو دیدم و این این دقیقاً مثلا این،, این بود که چون ببین خیلی از حرفهایی که میزد زد توی فلسفه کار ما بود ولی مثلا ما براش نه واژه‌ای داشتیم نه تاریخش رو میدونستیم نمیدونستیم دیگر این این چیزا رو اکسپلور کردن رو کنکاش کنکاشو اینا کردن و کلی آره مثلا اینا تاریخ داره اینا نمیدونستیم آره بعد تو دانشکال من دانشکال که نرفتم ولی اینا رو یاد نمیدن اونجا اون تاریخ درست حسابی از کامپیوترستانی آدم یاد نمیره. بعد خلاصه ولی مثلا بریت فیکتر یه حد چیزه به قول این خارجی یاد، یه ربیت هولیه برای خودش که واردش که میشی دیگه آره وارد تاریخه. تاریخ، تاریخچه مثلا کامپیوتر میشی و دیگه میری از اون اول. فان نویمانو و بچه همونم لیکلایدر و انگل بارت و پپر و الانکی و اینا همه... همه اینا رو باید دیگه یاد بگیری دیگه چه نکته خوبی گفتی و الان واقعا به نظرم من یه دونه از این سیلابسهی که جاش خالیه توی این واحدای درسی دقیقا هم توی گفته تاریخچه تاریخ چه کامپیوتره؟ آره, آره. چی شد از کجا اومد کیا چیکار کار کردن؟ چطور شد توی مسیر قرار گرفتین و این حداقل اینکه اسم چند نفر بدونی و بدونی کجا باید بری رو سرچ بزنی و اینکه اصلا بدونی آدمی هستن آره, که دارن روی این کار میکنن مثلا از صفر صفر شروع نکنی دقیقا دقیقاً واقعاً همین دیگه هیچ درسی نبود که در رابطه با این نحوه شک گرفتن این ساختاره و این مایندست صحبت بشه و اینم واقعاً مهمه دقیقاً خیلی مهمی گفتی آره میدونی چون من همیشه فکر می‌کنم مثلا میرم این آدمایی که گذار بوده مثلا تو صنعت نرم افزار حالا یکم موثرتر من خودم دوست دارم مطالعه می‌کنم و که آها همه مثلا اینو مثلا به عنوان رول بهش نگاه می‌کنم یا آ اینو گفته مادیا و حتما اینو انجام بدیم من همیشه تو که اون کسی که اومده این اینو اختراع کرده و به وجود آورده اون مایندستش چی بوده در اون لحظه داشته به چه پرابلمی فکر می‌کرده که نتیجه شده این دقیقا دقیقا این خیلی کمک کنی که تو درک بهتری داشته باشی. من یه مثال رو سریع بزنم. من این مدت که درگیر بحث TDD هستم بعد خب این آقای کنت بکن رو معرفی کردم. آقا هر کی صحبت می‌کنی میگه آقا من می‌خوام بشونم کاورج 100 درصد داشته باشم من می‌خوام تست بنویسم فلان این حرفا. یه جایی تو استک اور فلو من یه کوشن پیدا کردم که آقا واقعا این اندازش چقده؟ و این سوال ما 13 سال پیشه کنت که اونجا کامنت گذاشته نوشته که ببینید ما پول نمیگیریم که تست رو ما پول میگیریم که به یه حدی از اعتماد به نفس برسیم که بتونیم کودمونو بیرائش بکنیم نه چیز دیگری یعنی کل آیدیاه در آقا پشت تیریدی این کانفیدنسه بود که یارو جورت بکنم در آینده کودش رو ادیت بکنم و به نظرم برشنگی ک آی موافقم. باشه چون من دوستانم یکم تمرکزم خود کده رپورت داشته باشیم برگردیم به رپورت من چند تا سوال دارم بپرسم. چش چشم. اولین چیزی که به چشم میخورد تو رپورت و برای من جالبه اینه که عکس اونجا زیاده، گیف اونجا زیاده. آها ترجمه اینکه که داری یه کار ویژوال انجام میدی، این بعد چالش نمیده داکیومنت کردنش؟ چون اکثر رپورت وقتی واحد میشه markdown و تکست پس یعنی خب تو چون داری یک کار ویژوال میکنی به صورت تصویری هم و اون مخاطب گفتگو بکنی این چه چالشی برداشت داشته یا حالا آره واقعا اصلا ببین توضیح اینکه حالا چجوری از لایبری استفاده بکنی یا خود لایبری چجوری کار میکنه این چیزی که با متن خالی خب خیلی سخته بعد حالا الان این کار که خودش ویژواله بالاخره سختتر هم میشه یعنی باید آدم حتما باید یه جوری ویژوال توضیح بده وگرنه تو داری صرفاً از کاربرا میخوا که آقا من هرچی بهت میگم تو تصور بکن تو ذهنت و یه تصویری چیزی ازش بر خود تو ذهنت بساز من تو خب باره. میدونی راستش به نظر من فقط در مورد کار ویژوال هم نیست اینه مثلا تو به عنوان مثال مثلا یه دیتابیس رو هم خیلی یاد بگیری ات یه ت... یه تصوری داشته باشی که مثلا دیتا چجوری فلو میشه توی برنامه اه... ساختار داده چجوری کار میکنه و اینها کلا هر چیزی بصری باشه برای یه حداقل یه درصد بزرگی از کسایی که ذهنشون هم کار میکنه خب میتونه خیلی مفید باشه مثل مثلا یه دیتا استراکچری میمونه کار بصری تا توضیحه بصری مثلا یه دیتا استراکچر میمونه که مثلا یعنی مثلا یه دیتا تو درست میکنید که برای مثلا سی پی یا جی پی مثلا چند صد هزار برابر سریعتر میتونه یه چیزی رو پروسس بکنه نسبت به اینکه اگه اونو مثل خام تعریف کرده باشی رو میموری ویژوال یه دیتا خب که که با اون حالا پروسه های مغز ما ها خیلی خوب کار میکنه و اگه مثلا تو خوب دیتا رو به صورت ویژوال بچینی ویژوال بچینی یه چیزی که در حالت عادی با خوندن متن ممکنه دو روز زمان ببره تو ممکنه مثلا درزد چند دقیقه توضیحش بدی در مورد این مثالم هست تو مثلا مثلا مثلا بدم که چقدر خلاصه توضیح دادن ویژوال میتونه مفید باشه خود خود منتقل کردن اینم که چه سمپلی در بسازی و اونجا قرار بدی که تو مطلب تو بتونی برسونی خودمونم کار چالش برانگیزیه به نظرم آره آره اتفاقا حالا من استعداد خاصی ندارم تو توضیح دادن ویژوال کارها فعلا یه چیزی من درست کردم که اونهایی که استفاده میکنن این اوائل کار راه بیافتن بعد امیدوارم کسی بتونم الان وارد تیم بکنم یا باشون الان یه همکاری بکنم کسی هستن که اصلا تو این جور کارا استعداد دارن مثلا یه شخص اصلا نیکی کیس من یه فن بزرگشم و اصلا یک استعداد عجیبی داره تو توضیح دادن ویژوال و غذای ها یکی نکات جالبه این پرژیتی ها ترجیه استاده اینکه با کافی اسکریپ شروع کردی و بردی کار و بعد مدت روی تایپ ام این دلیل اینکه اول کار رفته سراغ تایپ... کافی اسکریپ چی بود و این ترنزیشن چطوری صورت گرفت که حالا بعد از کافی اسکریپ رو تایپ اسکریپ و چرا تایپ اسکریپ چرا جواسکریپ نه چرا اون زمانی که ما شروع کردیم خب تایپ اسکریپت که اصلا پیشرفته خوا... نبود خیلی تازه اوایل اوایلش بود مثلا چیز نداشت دیسجوئنت ام... یونیون نداشت خب تو یعنی اون تایپی که واقعا تو زبان جاوا ازش استفاده می‌کردی و همچنان نمی‌تونستی توی تایپ اسکریپت ام... اپرو... اکسپرس ابراز بکنی بعد خود جاوا هم که خب چیز بود دیگه کلی مشکل داشت مثلا ایتراتور نداشت چه فقط یه فور داشتی فور هم بالاخره مشکل خودش رو داشت لت مثلا لکسیکالسکوپین نداشتی خیلی چیزا نداشتی بعد کافیسکریپت به قول این خارجی های was a fresh air یعنی you know, تازه جدید تمیز خیلی خوب بود هم سینتکس خیلی تر داشت و همین که کلی از اون مشکلای های سمانتیک جواسکریپت رو حل کرده بود و اصلا بدون اون خیلی از این فیچرهایی که الان ما تو جاوا جدید داریم نمیتونستیم داشته باشیم نه همش چیزای به قول معروف های کافی اسکریپت بود در هر حال با کافی اسکریپت شروع کردی ولی بعد یه مدتی به نتیجه رسیدین که احتمالاً خیلی جوابگو نیست آره خب چی شد میدون دیگه بقی هم زبانو پیشرفت کردن فلو اون موقع اومد تایپ برای جاوا اون موقع فلو یه سری امکانات تایپی داشت که تایپ اسکریپت نداشت بعد مهمترینش برای من چیز بود. دیسجوینت یونیون ها بود. یعنی اینکه مثلا میتونستی بگی یه چیزی یه متغیری یا استرینگ یا نامبره. چیز سوم دیگه نیست. میتونست اینو بگی. بعد به محض اینکه این این بود تازه اصلا کلی کد میشد نوشت و درست تایپ کردم کد رو و خلاص اون موقع دیگه من سویچ کردم به فلو و بعدش هم دیگه تایپ اسکریپت. تو چرا چی شد که تصمیم گرفتی برسی تایپ اسکریپت و نه جاوا اسکریپت ES6؟ Plus. آها، ببین با تایپ اسکریپت خب اگر،, اگر درست ازش استفاده بکنی آدم میتونه ازش نادرست استفاده بکنه و من چندین ماه نادرست استفاده میکردم زیادی مثلا تایپ پیچیده میمودم مینوشتم و خلاصه در، فقط درگیر تایپ سیستم میشدم اگر از اون بیای بیرون یاد بگیری که چطور استفاده بکنی و اون خلاصه اون چهار ماهی که من چار پنی ماهی که اینجوری بودم رد بکنی میتونی تونی طوری کد بنویسی که وقتی کدی داری عوض میکنی همیشه خیالت راحته که قرار کار بکنه خب نه همیشه ها ولی مثلا فکر کنم از هر 20 بار 19 بارش خیالت راحته مثلا تو یه متغیر یه تایپی رو از استرینگ مثلا میکنی نامبر خب سریع بهت میگه آقا ده جای دیگه کدت اینو به عنوان استرینگ ازش استفاده کردی خب چیکار میخوای بکنی الان و بعد تو میدونی خلاص درستش میکنی حل میشه میره بعد کلی هم ابزار بهت میده دیگه ابزاره استاتیک آنالیسیس بهت میده که این باز چیزایی که حالا مثلا سی شارپ کارا و اینا خب میدونید دیگه از خود سی شارپ از قبل داشتن و خلاص تا الان اینا رو توی جاوا داری و خلاص اینا کمک میکنه بعد الان که دیگه سی تچ یوزر داره و بعد هر ورژن جدیدی که میدی بیرون بعد خیلی حواست باشه کار اینا رو خراب نکنی وگرنه مثلا یه شرکت یه چیز میشه منتظرت میشن که بیا درست بکنی دیگه الان تایپ داشتن دیگه خیلی بیشتر کمک میکنید مثلا من وقتی این تایپ چکه سبز میشه خیلی خیالم راحت تره نسبت به اینکه همین بیام ریلیس بدیم بیرون من خودم کسیم که تو پروداکشن به خاطر همین قضیه سوتی دادم و میدونم بخواست دو نفر بودیم با هم روی یکت کد کار میکردیم و تو مرج بعدش به مشکل خورد در هر که اگه ما تایپ درست داشتیم این مسئله پیش میاد احساس نمی کنی فلکسبلیتی فلکسبلیتی رو ازت گرفته یا محدودت کرده الان که رفتی سراغ سیستم تایپ دار هرچند حرف خوب زدی که واقعا تو تایپ اسکریپت تایپ سیستم خیلی خوب پیاده سازی شده ببین تایپ اسکریپت سال 2018 نه تایپ اسکریپت چند بود یادم نمیاد ولی یه موقع اینا اومدن دیستجوینت رو اضافه کردن بعد این خیلی کار راحت تر کرد بعدش هم یه فکرم دو سال پیش اینجورا بود که... یه سه سال پیش ام... یه فیچری به نام ام... Conditional Types یکه اصلا تو توی تایپت میتونی If Else بنویسی خب اینو اضافه کردن و این دیگه واقعا جدید بود این مثلا تو این تو چیز دیگه نداشتی خب وارد. Type Level Programming بود دا... بعد چیزه Turing Complete کمپلی... هم هستش اصلا تو قشنگ میتونی باش کدی بنویسی که اصلا چی میگن یه چیزی رو رندر بگیری حتی بخواهی میشه خیلی سخته ولی میشه چیزی که دواره و هم توی پروژه دارم میبینم واسط لایسنسیاس که استفاده کردی دی. و توجه به این که هم پرچم اوپن سورس همین که در اندم میخواد کار سرویس ارائه بکنی و علانم جای مختلفی در انزش استفاده میکنن، یک کمی همه این اینکه در برابر با این نحوه انتخاب لایسنس توضیح بدیم ام ممنوع. ببین چیزه دوتا لایسنس. یکی یه لایسنس کوره که همین چیزه، همین پشی لایسنسه چیز شبیه MIT و BSD و این است. خیلی راحت میتونی ازش استفاده کنی هر جا. اون لایبرری کور چیزی که شما وقتی داری از theater استفاده میکنی اون لایبرری داریم شیپ میکنی داخل باندلت میذاری که end داخله داخل یعنی کدی هستش که end user اجرا میکنه و خلاص اون یه لایسنس خیلی آزاد باید داشته باشه وگرنه خب سخت میشه انبت کردنش بعد library دوم هستش theater استودیو که اون خود اون UI که باهاش مید چیز میکنیم یا animation ادیت میکنی و اینا اون مثلا مثل،, مثل فوتوشاپه یعنی مثلا تو با فوتوشاپ که میای چیز میکنی ازش استفاده میکنی خب خود فوتوشاپ که لزوم نداره تو مثلا لایسنست اگه اوپن سورس باشه از اش استفاده میکنی منتها کار نهاییت باید متعلق به خودت باشه. اون فایل پی اس یا جی پی که درست میکنی باید برای خودت باشه. اینم هم همین جوریه. استودیو اون فتوشاپ هست و شما اونو شیپ نمیکنی به اند یوزره. فقط موقعی که داری انیمیشن و اینتراکشنال درست میکنی داری ازش استفاده میکنی لذا این لایسنس چیز نیست. این لایسنس مثل کور باز, باز باز نیست. لایسنس ای جی پی اله. AGPL خب کپی لفته اگه مثلا اگه بخوای تغییرش بدی باید تغییراتتو منتشر بکنی با همین لایسنس AGPL ای و اینکه از یه چیزیم هم که جلوگیری میکنه اینه که حالا ما در نهایت برای سرویس هم خواهیم داشت و به احتمال خیلی قوی به احتمال مثلا 99 درصد بک اونم اوپن سورسه بعد یعنی که مثلا هر کس بخواد خودش میتونه سرویس های بک فیت جاوا برای خودش و شرکت خودش رو بندونه بکنه الان یه اتفاقی میفته واسه چیزای بک مثل مثلا, مثلا پروژه معروف بگم یکی بانگو دی هست یکی هم الاستیک الاستیک اینجوری بود که خب مثلا آمازون هم اومد همین الاستیک رو ارائه داد بعد و خب چیزه سرویسش در نهایت میتونست ارزون تر از خود اون سرویسی که شرکت الستیک داشت میداد باشه الان یادم نمیاد شرکت اسمش چی بود که یه چیز دیگه اسمش ولی آره آمازون میگفتش که خب اصلا روی نتورک ما داره اجرا میشه ما اینو به اون یه سرویس به کاربران میدیم و از اونجایی که اون ما خودمونیم مثلا ما از سرورهای خودمون هم داریم استفاده میکنیم به خودم دیگه لازم نیست پول بدیم که برای همین ارزان‌تر درمیاد برای همین قیمتی که واسه کاربر تموم میشه ارزان‌تر درمیاد بدونن که ما بیام کانتریبیوت بکنیم کد به مثلا به پروژه اصلی الاستیک بعد اینجا بود که مثلا الاستیک اومد لایسنسش رو عوض کرد یا لایسنس‌گیری کردش که نه اگه شما می‌خواید خود الاستیک رو یعنی خود خود اللاستیک رو نه اینکه مثلا یه نرم افزار که از ال استفاده میکنه خود اللاستیکگه میخواه اون سرویس ارائه بدی بعد باید کل سرویس بکن هم open source بکنی و اسپش گذاشت سرور ساید licenseنس حالا ایGP هم خیلی شبیه اونه باز حالا یه مقدار بازتره یه مقدار چی میگن بیشتر اجازه میده ولی خیلی شبیه اونه اگه میخواید تو بکن از ف بکن رو به عنوان یه سرویس به کاربر ارائه رای بدی تو بعد خود بکن تو باید open source بکنی وگر نه نمیتونی اینجوری. این پیشگیری میکنه تا حدی از اینکه آمازون و این های بزرگتر مثل ماکروسافت اجر و اینا که تو از این کار نکرده فکر پیشگیری میکنه که اینا بیان واسه بک رقیبت بشن بدون اینکه خودشون کد نوشته باشن و اینها چه جوابی بود من انتظار نداشتم و انقدر موضوع پیچیده و مهمی باشه انتظارشام بگی آره آپاچی چون حال بود الان در رابطه با موضوع مثلا با وکیلی کسی مشورت کردین یا کسی هست که تو زمینا راهنمایی بکنه چون خیلی جواب مشخصی بودش تا من البته که مشورت نکرده بودم ولی خب قشنگ اومده بودم خونده بودم متنای حقوقیشو و من تا یه حدی مثلا میفهمم اینا یه حدی بعد ولی دو سه هفته پیش بود داشتم با یه وکیلی مشورت می‌کردم بعد یه خانمی بودن بعد من داشتم میگفتم که آره مثلا من از این لایسنس چیز الاسسیک خوشم میاد و اینها خوب در مورد اون تحقیق کردین که چطور ما ازش استفاده بکنیم بعد این دوربین زرزد گفت اون لایسنس الاسسیک رو من نوشتم بعد خداسه برگام ریخت و اینا چه لایسنس هم خودش نوشته آره آره من باورش باورم نمیشه که اینجوری آدمو کار میکنه الان الان ادمی خیلی معروفی دارم با با این پروژه کار میکنه یه سالی که من اینجا بین حرفات برام مطرح شد که بپرسم این بود که به این گفتی که حالا یه تغییری میدیم بقیه ازش بخوان استفاده بکنم باید حواسمون باشه و این برام سوال پیش مند که پروسه دیپلوی تون الان چطوریه و تعاملی که با شرکتی که تی استفاده میکنن به چه صورته الان اینجوریه که اون شرکته که از 3 استفاده می‌کنه همه رایگان استفاده می‌کنن یعنی من هنوز هیچ سرویس پولی نذاشتم روش و این چیزم هم که الان رایگانه همیشه رایگان خواهد بود چیز اولین فیچری که می‌خوایم اضافه بکنیم ریل تایم مثل گوگل داکس که اگه با 3 داری کار میکنیم مثلا دو نفر سنغر بتونن با همدیگه همزمان چیز رو ادیت بکنن و اون احتمالاً پولی خواهد بود اگه از هاست ما استفاده بکنی پولی خواهد بعد اینکه حالا حالا پروسه دیپلویش چجوریه ببین الان فقط یه اسکریپت هست که میاد فقط تستا رو ران میکنه بعد تایپ ها رو هم چک میکنه همین منتظم اولین کسی که استخدام کردم به زودی وارد شرکت میشه و اون از اولین کارایی که قرار بکنه اینه که بیاد یه سری تست چیز تست اند تو اند بنویسه که اینا روی یه سی آی بشن، و خلاصه دیگه ما همیشه خیالمون راحت باشه وقتی شیپ میکنیم به اند یوزر نرمه واقعا کار میکنه من دقیقا سال بعدیم همین بود چون پر... که پروژه پروژه خاصیه میخواستم بودم که این انتو اند چجوری؟ راستش من تا حالا انتو اند انجام ندادم نمیدونم ولی خب that's not my problem that's his problem <laughs> آره یه 14 قولشو بگیریم یه قسمت دیگه زرد داشته باشیم با اون کسی که استفاده کردن بنده خدا رو بیاریم ببینیم با چه مکافاتی این تونست اینترند تست برای ای بریم آره بنده خدا بنده خیلی میتونه حتی ممکنه هست که کامیت. آره کامیتی ممکنه من میخوام بذارم شاید مثلا یکی از کامیت انجامش بده. اتفاق یه نفر هستش که اون از یه پول ریکوست خیلی گنده فرستاد چند وقت پیش و مثلا یه سه تا از این فیچرهایی که کاربرها میخواستن هر سه تا با یه پول ریکوست اومد جام کرد من خیلی مثلا خوشحال بودم که ای ول یه نفر اینقدر داره مثلا کد کانتریبیوت میکنه و چیزه اون اون آماده است مثلا بهش بگی الان تجربه خود از اوپن سورس کردن پروژه چطور بوده مثلا کانتریبیوشنایی که گرفتی یا خیلی مثبت یعنی اینکه خیلی خوشحالم اوپن سورس کردم البته خب خیلی وقتم که قرار اوپن سورس باشه خیلی وقته و, و اینکه چیز فقط مثلا وقتی یه چیز اوپن سورس میکنی من راستش مثلا از همون دو سه هفته اول دلم میخواست کانتریبیوشن بگیرم یا مثلا تصورم این بود و دو سه هفته تایم خیلی کمی بود برای این پروژه بعد بعد مثلا دیدم که بعد یه ما هنوز کانتریبیوشن چندانی نمیاد مثلا چیزه خیلی کوچیک. که مثلا یه تایپو رو میان فکس میکنن و اینها بعد مثلا گفتم که این،, این،, این علامت بدیه بعد یه حدیدم که نه الان مثلا شرکت هستش که حتی مثلا داره میگه که یا ما پول میدیم کسی کانتریبیوت بکنه یا اینکه خودمون کانتریبیوت میکنیم و به شما پول میدیم که مثلا فیچر ها رو بیاید بنویسید باید سریم هستن که اصلا خودشون تنهایی میان پولیکوست می و اینها یعنی مثلا یکیش یک مثالش همین کسی که این پولیکوست گندر فرستاده اسمش کوریه پولیکوستی که این فرستاد عملا دو هفته از کار ما کم کرد تازه این هم اولشه این مثلا بیشتر خواهد بود و این طرصه یکی از چیزهایی که از ازاره حضینه و زمان و اینها واقعا سرفجوری میکنه برامون تا خب خیلی مزایای دیگه هم داره ولی حداقل هزینه و زمان و اینهاش خودش به خودی خود, خود یه خیلی بزرگی مرسی از کاری که دارین میکنی و کانتریبیوشن که دارین انجام خیلی خیلی خیلی خیلی کار ارزشمنده من اوردی آر سعی میکنم که یه جای کمکت کنم مثلا تو اون حوزه تصویرسازی و اینا من میشناسم که الان بعد ایمیل میکنم میتونی ارتباط بگیری اون متهمم که خیلی می‌تونه به کمک بکنه باعث خیلی خوشحالم که پروژه پنسورس رو تو این قسمت تونستیم باهاش صحبت کنیم که تونسته تبدیلش بکنه به یک بیزینس موفق به بی یک تبدیلش بکنه به یک بیزینس موفق و اینکه هولش داره شرکت یه بیزنسی که انشالله موفق بشه البته <تصفيق> این اساس می کنم داریم مهره ها رو درست میشینه و امیدوارم حالا هر چی که پیش میاد این دستری که تو شرکت کردی برای پروژو پنسورس خیلی تجربه جالبیه و من امیدوارم که بتونیم حتما یه قسمت دیگه در آینده با تیتر جیس داشته باشیم اما به با عنوان صحبت پایانی میخواستم بدونم که خودت در درمانده چیزی صحبت بکنی یا سوالی بوده که ما نپرسیده باشیم ولی تو علاقه داشته باشی درمانش توضیح بدی و خودت چیزی اضافه کنی آره ببین برای لانچ من برنامه این بود که اول یه تویت بزنم بعد برم پرادکت هانت خلاصه یه چیز یه لانچ اونجا بکنیم بعد کلی مثلا فورومای مختلف هست برای کسی که انیمیشن رو کار میکنن اونجا ها مثلا به معرفه بکنیم و خلاصه مثلا زور رو بزنیم که مثلا یه ده بیس نفری بیان ببینن کارو. ولی یه توییت من زدم و توییت یهو قشنگ ترکی یعنی انقدر چیز بود انقدر واکنش ها زیاد بود که من تا یه هفته فقط داشتم به واکنش جواب میدادم بعد و اینم باز یه بخش بزرگیش به خاطر اوپن سورس بودن بودن فکر میکنم وقتی اوپن سورسی دیگران مثل خودم هم مثل شما مثل همه وقتی یه چیزی در حقیقت یه کانتریبیوشن به بقیه بقیه هم دوست دارن که کمک بکنن بهش کانتریبیوت بکنن اگه کد نمیتونن کانتریبیوت کنن شده سر صدا درست کنن تو سوشال میدیا یا داکیمنتیشنش رو بهتر کنن یا اصلا سوال های بقیه کاروره رو جواب بدن و خلاصه این چیزی بود که قشن اینجا اتفاق افتاد یعنی من اصلا دیگه وقتی که توییت رو زدم دیگه بعدش اصلا لازم نبود برم جای دیگه لانچش بکنم خود اون تویت کافی بود که دیگه چهار هزار خوردهی گیتاب استار بیاد چکایت مختلف بیان استفاده بکنن یوزرای مختلف بیان استفاده بکنن به خاطر اینکه کلی آدم اومدن در مورد سرسدا درست کردن مثلا سازنده ثری جی اس دوب خود اون مثلا یکی از کسایی بود که دید که اه الان ما برای سی جی میتونیم میتون یه ادیتور ای داشته باشیم و خودمون اومد کمک کرد برش سرسدا درست کرد حتی مثلا اومد اون فروم اون سرور ما تو دیسکورد و یه ذره گرم کردن که وارد شد کلی آدم مثلا همراه اون اومدن اینجوری و, و خیلی ادمای دیگه هم همینطور و واقعا اون کافی بود بعد این چیزی که توی اوپن سورس هست توی کلوز سورس خب خیلی کم و خلاصه آره این چیز خوبیه یعنی اگه کار اوپن سورس انجام بدی از اینجور مذیعت ها داره این چیزی که من خودم هم در این حد میتونه خوب باشه آره واقعا اینکه کامیونی تیم میاد و کمک میکنه که درش نیست و خیلی لذت د وقتی که این اعداد همینجوری رشد میکنه میره بالا از استار و تعداد ها و پول و اینا هر کدومش واقعاً خیلی بادم انگیزه میده فقط الان یه مسئله یه مسئله فقط برام که تو تو توییتر پس فعالیت داشتی یعنی تو احتمالا مخاطبای خودتو داشته تو داشت توییتر که این توییتت تونست دیده بشه ببین من فعالیتت خیلی کم مثلا تو سال گذشته شاید تا توییت هم نداشتم اینجوری ولی خب یه هزار خورده ای اون موقع داشتم فالور هزار خورده بود ای خب تو فقط کافی یه نفر یه نفر که فالورش بالاست یا اینکه که انفلونشاله خب بصلا مدیر اکتیف سیوری که یه دیزان خیلی مطرحه اون فالور چندان نداره ولی وقتی این تویت میزنه قشنگ توییت قشنگ میپیچه اینجوری و آره خلاصه چند تا آدم اینفلونشال پیدا بکنن تویت بزن، ری تویت بکنن کافیه عجب. من خیلی موضوعات زیادی هست که من دوستانم روش صحبت بکنیم و همطور که به عقب نگاه میکنم باید. باید. ولی به نظرم من پایم بچه هر وقت خواستی آره پایم. عالیه من خیلی دوست دارم های بیشتر داشته باشیم با موضوعات دیگه شاید مثلا بتونیم یه فرصت بشه راجع مسئله خاص یعنی مثلا یک فریم ورک خاص یا یه زبان خاصی مقدار بیشتر صحبت بکنیم حالا باید ببینیم باز خود چطوری خودت اگر انگیزه و علاقه داشتی یا موضوع خاصی برات جذاب بود میتونی بگی ولی تا به نظرم بیین قسمتو جمع و جور بکنیم و اینکه منم ازت تشکر بکنم که این فرصت رو در اختیارم گذاشتی بود صحبت بکنیم خیلی برام جذاب بود و خیلی خوشحالم که تونستیم تو این کنار هم باشیم برام همین طور برام آره سرتون درد آوردم ولی خیلی خوش شد باشتم نه اختیار داریم خیلی لذت بردیم. دمت گرم موفق باشی و اینکه امیدوارم دوباره سیده تولیش نویم ممنون ممنون شبتون بخیر. خیلی میرسی